می‌تونم خواهش کنم همه توی یه لحظه بلند مرسی همه. همه همه مرسی. دستا رو لطفاً باز کنین. یه سه تا نفس عمیق با هم بکشیم. یه زره اون خواب‌آلودگی برطرف شه. چه چهرا... چهره‌های آشنا می‌بینم یزده. بریم چپ. چپ. چپ. It is left. آه چپ من راست شما و برعکس. به افتخار خودتون بفهمید. الارمی آن 18 مینیتز. این اولین کاری که میشه با گوشی کرد. برای سفر. چند نفر از شما منو از قبل میشنسیم؟ کسی قبلا منو میشناسه؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. خوبه. عرضم به خدمتون که من عرفان فکریم، فکری هم. خوشحالم که در خدمت شما تو این هیچ دقیقه میخوام راجب به اینکه چطوری ارزان و ارزشمند سفر کنیم، صحبت کنم. وجود 100 تا سفر داشتم. بیش از صد تا سفر به چهلو، چهار تا کشور دنیا. در بیر انجاهانی ایران بودم چهار سال پیش، الان دیگه می‌بینید که نیستم چون چهار پنج ساله که به خاطر حوادث کنونادی کنونادی رو گوشم کنار و دیگه بیشتر فقط جهانگردیه رو ادام میدم. بخش اول صحبت ها من صحبت ها دو بخش می کنم بخش اولش راجب ارزون سفر کردم و بخش دوم را رجب... رجب... ارزش من سفر کردم یعنی ارزش سفر چه جای این. کسی میدونه اینجا کجاست؟ حد میتونین بزنید اینجا کجاست کجا؟ کانادا؟ کجا؟ ایران, ایران دی خیلی, خیلی اومد این داخل <تصفح> البته ایران هم جاهای مختلفی داریم این خیلی خیلی نزدیک به ایران حالا راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اولین بخش صحبت های من مربوط میشه به ارزان سفر کردن. هرچی معمولاً اینطوریه. باید رو این بد باش. معمولاً اینطوریه که... تا اینجا بیشتر نمیتونم بیان بزین. معمولاً اینطوریه که... معمولا اگه کسی مثلا میخواد بگه جهانگرد حرفه‌ای یا کسی که خیلی سفر حرفه‌ای میکنه تو تصور افراد معمولی اینه که یه آدمیه که کوله‌اش از زیر زانوش هست تا بالای سرش دیدین مثلا بعضی وقتا می‌بینیم واو اینو ببین از یه آدم حرفه‌ای جهانگرد حرفه‌ای اصل اول برای ارسون سفر کردن سبک سفر کردنه یعنی یاد بگیریم که چجوری از تجهیزاتی که همراهمون هست بیشترین استفاده رو بکنیم مثال خیلی ساده یا ای بخوام بزنم چهار پنج تا تجهیزات مختلفی که ما همراهمون داریم مثل کیسه خواب مثل کیسه خواب زیرانداز پتو، پانچو یا بارونی برای جاهای مختلف تمام اینا که 6 7 کیلو میشه و یک و نیم تا 2 میلیونم هزینه در واقع تهیه میشه تقریبا با 7000 تومان قابل تهیه است یه وسیله‌ای داریم به نام پتوی نجات یا سپیس بلانکت اگه سرچ کنین میتونید ببینید که چقدر باعث میشه هم سفرتون سبک بشه و هم راحت حتی نجات استفاده میشه برای معمولاً امداد ولی ما به طور روتین توی سفرمون استفاده ازش میکنیم سبک سفر کردن باعث ارزون سفر کردن میشه اولیشه به دلیل چی به دلیل اینکه خیلی از جاها شما میتونید با ندادن از بار تو پرواز هزینه رو بیارین پایین. اگر سبک باشین، کوچولو سفر کنین، می‌تونین خیلی جاها از روش‌های مختلف حمل و نقل ارزون استفاده کنی. یا حمل رایگان، مثل چی؟ هیچ ها. مثل هیچ‌هاکی یا مرامیسواری. تو کشورهای مختلف قابل انجامه. اگر سبک سفر کنین، خیلی از جاها که افراد دارن وق چند سنگین از فرودگاه برمی‌کنن شما فرصت اینو دارین سریع‌تر برین و چونه بزنین برای کاری که می‌خواید همرا نقل که می‌خواید انجام بدیم. دومیش استفاده خلاقانه از هر استفاده خلاقانه از تجهیزاتی که همراه داریم. یعنی اینکه یک تیشرت همین تیشرتی که تن منه حدود 15 الی 20 کاربورد داره که ما فقط از یه دونش استفاده می‌کنیم به عنوان می پوشیمش. من با شکار موافق نیستم، ولی یه جاهایی تو جنگله ویتنام مجبور شدم با این ماهی بگیرم. از طور ماهیگیری هست، پتو هست، زیرانداز هست، اگه برعکس سر رو می‌کنیم، کلاه دوباره برعکس سر می‌کنیم، لولش کنیم، میشه آفتاب‌گیر. می‌تونیم به عنوان برانکارد ازش استفاده کنیم برای حمل مستوم و هزاران داستان دیگه، طبیعی آب. و داستان های دیگه یا یه بطری خالی آب یک کس که جهان گردی میکنه یا سفر یا طبیعت کردی میکنه متوجه میشه که چقدر میتونه استفاده های مختلفی داشته باشه نه فقط چیزی که الان به عنوان بطری خالی که شد میش دور میشه باهاش تناب درست کرد میشه باش ماشین بکسور کرد میشه باهاش درد دردار درست کرد میشه لیوان ازش تهیه کرد و هزاران داستان دیگه. خلاقیت اینکه از هرجهیزت کمبراتون داریم استفاده بهتری بکنی باعث میشه که حجم اون کوله که گفتم از اینجا تا اینجا تبدیل بشه به 1 کیلو800 گرم که فکر 20 روز من باشم مالزی دور دور مالزی زدم 200 کیلومتر و 1 کیلو800 گم یه, کیلو یعنی یه کیف کمری. یه دست لباس، هااسپورت، یه پتون نجات و دوربین و موبایل این داستانم. پس سبک سفر کردم. یکی دیگه از راهای اون سفر کردن اینه که خیلی از مخصوصا برای جهانگردی حالا ایرانگردی هم همینطوره استفاده از زمان Shoulder سیزنه ما توی در واقع سفر یه های سیزن داریم یه لو سیزن یعنی فصل پر مسافر فصل کم مسافر و فصلی که بین این دو است اون دو سه هفته بین Shoulder سیزن یعنی قبل از اینکه مثلا شب عید بشه قبل از کریسمس یا بعد از کریسمس خیلی از جاها تخفیفات فوق العاده خوبی میذارن چون همه اومدن سفر تموم شده و ما تازه میتونیم سفران رو شروع کنیم با تخفیف 50 درصدی مثلا فلان ایرلاین که ما همین اخیرا سیلانکا رو همینجیر رفتیم. پرواز سیلانکا دو و ما با یک و دیویست رفتیم. یک و دیویست هم خرج اونجامون شد کلا. پس شلدر سیزن یعنی زمانی که شما میتونیم هم لذت ببرین یعنی خیلی مثلا فصل، دا مخصوصا خارجی ها چون خیلی از های سیزن های کشور های دیگه، فصلای های پرمسافر، تعریفش با تعریف ما ایرانی ها از های سیزن فرق داره. یعنی مثلا کریسمس، ما سر کاریم همه. کریسمس که تموم میشه، باز هم ما کاریم. ولی میتونیم مرخصی بگیریم و اون تیکر رو بریم با هزینه بسیار پایینتر سفر. چون تمام هوتلا خالی میشن. تمام پرواز ها خالی میشن و تمامشون بدون استثناء به شما آفر های مختلف میدن. یکی از مهمترین راه های ارزون سفر کردن همینه. استفاده از تکنولوژی های جدید مخصوصا گوشی های تلفن همراه. اعتقال شخصی من اینه که در خیلی بالایی از ما این هواپیمای جت رو مثل یک فرقون استفاده میکنیم. دقیقا به همین. و همین تفاوت که شدت که عرض کردم چون شما خیلی راحت میتونین به تو ایلاین های مختلف اوز بشین تو سایت های مختلف اوز بشین خبرنامه های اونها برای شما میاد کی تخفیف خورده چند درصد چهلاین چه هتلی چه و همه اینها در دسترس شماست به جای اینکه فقط توی تلگرام مثلا تو گروه ها بچرخیم میتونیم خیلی از کارهای بهتری هم انجام بدیم. یکی از در واقع، حتی, حتی میخواام اینو خدمتون بگم که با این میشه درآمد داشت من تقریبا تو ه ده سال اخیر کل درآمدم از این بوده یعنی سوشال میدیا و نمیدونم درست کردن کلیپ ها از سفرهای هیجانی و این داستان های مختلف که خیلی خیلی توی این دو سال اخیر بهتر شده و وجود اینستاگرام تلگرام فیسبوک یوتیوب و امسال هم شما خیلی راحت میتونین خدمت یا سرویس یا جذب مخاطبتونو خیلی سریعتر و بهتر انجام بدین. یعنی میخوام بگم درآمد هم تو سفر میشه داشت تو این زمینه. تجربه غذای محلی یکی از کارهایی که خیلی از جهان خیلی از کسایی که توریست هستن انجام میدن اینه که میرن تو بهترین رستوران، بهترین هتل یه فوق العاده عالی میخورن با یه خیلی بالا. در حالی که هنر اصلی جهانگرد هرفهی نسبت به دوستان دیگه اینه که خیلی ها به من میگن، خیلی ها فکر میکنن که به جهانگردی باید خیلی پول دار باشی. آش، شما پول دارین؟ چقدر پول دارین؟ جوریه؟ هنر اصلی جهانگرد هرفهی جهانگرد هنر خرج نکردن، یعنی هنر سیف کردن پوله. اینکه کجا چقدر هزینه کنه؟ ما درآمد من سر گنج نشستم ولی درآمدم به خدمت شما که میدونم هنر خرج کردن یاد گرفتیم یعنی کجا چقدر باید خرج کنم. به عنوان مثال یه مثالی براتون میزنم چند نفر از شما هستین که یکی از راه های ارزون سفر کردن فروش لوازم دست دومی که مدت هاست افتاده. چند نفر از شما، بعدی که گوشیتون رو خریدین، هنوز یک گوشی دست دوم قدیمی دارین. بگین چند نفر ساعت اضافه داریم؟ یه ساعت اضافه که یه ساعت و ماه استفاده نکردیم. یکی دیگه از راه هایی که عرض کردم این هواپیمای جتیه که ما ازش استفاده نمی کنیم، مختلفی که لوازم دست دوم رو میشه توش عرضه کرد. و از من خیلی تعجب میکنم که توی این، سایت ها یه چیز عجیب غریبی می‌بینن مثلا یه چیزی دست دومه که بهداشتی نیست اصلا ولی گذاشته برای فروش ولی ساعت و موبایل این حرفا رو را خیلی راحت میشه فروخ حالا این رو میخام مشخصا کنم که اگر شما این هنر رو از طریق استفاده از اپلیکیشن‌های مختلفی که برای رزرو هتل برای پیدا کردن جاهای ارزون استفاده می‌خواید بکنید اگر این هنر رو پیدا بکنین باعث این میشه که با شبی یک دلار توی یک کلبه فوق العاده زیبا و تمیز همه چی امکانات هم داره ها. سرویس بهداشتی فرونه باشه یه دلار توی مرز لاوس و تایلند پوچیفا من خوابیدم. و وقت شما باشه یک دلار اقامت میکنید توی همچین جای زیبایی دیگه هیچ هیچ‌وقت حاضر نیستین که برین توی رستوران لکشری هشت روز رو فقط همونجا بمونین اگر غذای محلی رو خواهید داشت هر موقع من مثلا میگم هم غذا بیرون بخورم به بچه‌ها میگم میگم غذا بیرون بخورین اوکی سه بار در ماه میرین یه بارشون نرین الان غذای معمول چنده توی تهران مثلا با یه رستوران معمولی چقدر به نظر شما چقدر 20 تومان 20 تومان میشه چند دلار چند دلار پنج شب دارین اقامتتون رو توی اون فضای زیبا دست میدین. سرچ کنین، پیدا میکنین. پوچیفا، یا خیلی جای دیگه دنیا که این اتفاق را برای من افتاده. پس میشه ارزون هم سفر کرد. ارزم به خدمتون که حالا درآمد داشتنم در سفرم که خیلی خیلی خیلی گسترده است یا افراد بسیار مختلفی هستن اگه وقت کردین حالا این دوستمون سفر نمیکنه ولی یکی از راه های ویلاگینگ الان. ویدیو بلاگ. قبلاً بلاگینگ بود، یعنی نوشته و عکس بود، الان ویدیو بلاگه. یعنی همه ویدیو بلاگ تولید میکنند میزنند توی سایتشون یا یوتیوب یا اینستا. و از این درآمد دارند. یکی از نموناهای خیلی شاخص جهانیش، یا آقای, آقای امریکاییه که به نام کیسینی کیسینیستات کیسی الان یه چیز حلوشه. 8 میلیون سابسکرایبر داره تو جهان یک سال شروع کرده روزی 10 دقیقه زندگی شخصیشو میذاره توی یوتیوب و ماهی دو هزار دلار الان از این راه درآمده دو۵ هزار دلار تلویزیون ها شبکه های داخلی مثلا امریکا لوکاللا مثلا 5 تا 6 میلیون یعنی مخاطب دارن یه برنامه رو ویدیو ایشون از هیچده تا 25 میلیون بازدید داره. چون دستگرشتی نقطه خیلی جالب. دستگرشتی رو فوزولی و کنجکاوی آدم ها. که توی زندگی یک پسر نیویورکی چی میگذره. و هر روز همه منتظرم برم فردا چی کام میکنه. فردا مثلا میاد میگه امرو میخوام برم خرید. خیلی سناریوی ساده. امرو میخوام برم خرید. فردا با میره بیرون دعواشون میشه. دعوار هم ادیت نمی همونجوری میذاره با فوشو اینا تو چیز هست. بلگش. مثلا پس فرداش میره. امرو میخواهم هم لندن. توی هواپیما این گذاشت رو گذاشته رو لپس رو سرعت بالا خوابیده و این تونتون گرفته و اینا مثلا کلن یه چارت تا کلم هم هفته شده. ده دقیقه گذاشته توی سایتش. از تمام دنیا، الان های خیلی معروف دوربین و حالا این دورن پرنده مثل هلییک ها و نیکن و اینا هرچی که میخوان تبلیغ کنن میفرسم برای کیسی کیسی نشون میده و چند ده هزار دلار با بات ساله نشون دادن این به ۸ میلیون آدم میگیره و همین راحتی که خدمتتون عرض کردم من توی کار خودم دارم این کار انجام میدم یعنی درآمد از کلیپ ها و هزاران داستان دیگه که فرصت براش زیاد نیست و اما ارزش من سفر کردن. به نظر من هر سفری یک کورس دانشگاهیه. یعنی توش کلی چیز یاد می‌گیری. کارگر ساده بندر تو تانزانییا توی جزیره زنگبار من های اقیانوس هند رو یاد گرفتم. حتی بعضی وقت‌ها با زبان اشاره یاد میگیری یه دختر کوچیک ارمنی تو ارمنستان به من درستگردن, مقب... درستگردن قهوه ارمانی یاد داد، تو خونه محلی پس هر کدومشه به نظرمه یک دوره دانشگاهی هر یک سفری چون کلی چیز آدم یاد میگیره وقتی میریم جاهای مختلف مقایسه نقاط منفی, منفی که تو سفر هست باعث میشه که وضعیت خودتون رو متوجه بشین که چقدر خوشبختین و که من نمیدونین چند تاشو بهتون نشون میدم سانامی فیلیپین که خواهیم دید کمک رفتم کمک برای آوارگان کوبانی کوبانی معاصره شده بود توسط دایش از گرسنگی تشنگی داشتن می‌مردن آبان 93 من اونجا بودم 14 روز و اونها رو وقتی می‌بینی حالا کمک می‌کنی سر جاش ولی واقعا متوجه می‌شی که چقدر نعمت داری که نمی‌دونی ایده گرفتن از نکات مثبت یه نکته خیلی ظریفی وجود داره که من خیلی دوست هم بهش اشاره کنم خیلی ها که سفر هم اتفاقا کم کردن یا سفر نرفتن مخصوصا خارجی هر موقع میشینی مثلا تو نسل جوان متاسفانه یه ذره رایت شده ممید که تو جمع ما کمتر باشن یا حداقل اصلاح بشه میگن آقا اینجا خارج اینجوریه ها خارج خارج، خیلی ها. خارج ایران خارج این خیلی بده که خود تخریبی داشته باشین که خارج خیلی خوبه ایران خیلی بده وقتی بریم و دل اروپا هم برین پاریس هم برین یه ذره از برج ایفل فاصله بگین، تو این کوچه پس کوچه ها بینیم فقر و بدبخت داره چکار میکنه. پس نگیم اروپا اینجوری بود ولی نکات مثبتش رو همیشه میبینیم و حالا الگو میگیریم یا لویزش میکنیم، محلیش می کنیمیم استفاده کنیم و مهمترین نشم افزایش صبر و تحمله صبر و تحملمون، زیاد میشه فکرم یه دقیقه وقت دارم این اکثاری یک مرور کوچیک با هم میکنیم به همین مسئله هایی که صحبت کردیم اینجا من با شبیه هفتاد خوابیدم این کجا کار میکنه؟ دیدن زیبایی ها این یک معبد چیانگ رای تایلند این نقاشی میمونه و از در واقع نقره و علماس استفاده شده توش دیدن جاهایی از دنیا که اصلا یونیکه. مثل Wettest Place on Earth، خیلی فکر میکنم جنگل آمازون بالاترینه ولی این بالاترینه چون 36,000 میلیمتر در سال بارون میاند. تموم شده وقتم سری میزنم و فقط اشاره، تجربه های خاص و چیزایی که توی زندگی شهری و مدرن نمیشه انجامش داد، آقا کار نمیکنه. آها. دیدن آدم باحال، پر انرژی، کلی باید انرژی میده، آفریقای جنوبی، یا قبیله بدوی ماسایی وقتی اینا زندگیشون رو می‌بینی باز هم متعجب می‌شی چقدر خوشبختی چو <تصفيق> یا قبیله انسان های، مثلا محلیایی که اونجا هستند، توی این آفریقای جنوبی بود اون تانزانیه بود آه, اگه بره اینجا, اینجا مرز ایران و پاکستان دو تا در واقع بلوچ هستن ایرانی که با موسیقی محلی فوق‌العاده تجربه هایی هم در دانشگاهی است که کردم کلی ساز جدید میبینی دیدن حیات وحش از فاصله پنج متری این خط، یه خط چیز دارین میبینین یه خط اون ته اون گاو میشن که این شیره مخام بهش حمله کنه تجربه بسیار خاصی ما تو ماشین این ملوطه و هنوز زندم اینجا هم کنیا هستش یه ذره سریع نمیره مرز پاکستان حس این که خیلی ها آها اونجوری بهتره. بریم پایین. بریم پایین. بعدی بعدی. آها. مرسی. اه حس, حس اینکه اینا با تمام که امکانات کمشون از خیلی از آدمایی که تو شهر زندگی میکنن خوشبخترند. خیلی خوشبخترند. یاد میگیدی که بابا خوشبختی همین چیزیه که دم دست الانه. بریم سریع. من وقتم تمام شده. سریع سریع بریم جلو. گوبانی. این دوتا متاسفانی که در همون روز کشته شده بود تو جنگ از دست داده بودن و قرار بود بهشون خبر داده بشه. این کمپ البته. بریم، لاوس، بچه های محلی بریم، فیلیپین، سونامی فیلیپین، اینها همه خونه بوده که یه موقعی، اونم من هم ها حاج آفکری نزده. بریم بعدی، مرسی از همه متشکرم ببخشید